آن ترک پری چهرک دوش از بر ما رفت آیا چه خطادی که از راه خطا رفت تا رفت مرا از نظران چشم جهانبین کس واقف ما نیست که از دیده چه رفت بر شم نرفت از گذر آتش دل دوشان دود که از سوز جگر بر سر ما رفت دور از رخ تو دم بدم از گوشه چشمم سیلاو به سرشک آمد و طوفان بلا رفت از پای فتا دیم چو آمد قمه هجران در در بمردیم چو از دست دبا دل گفت وسالش به دعا باز توانیار عمریست که عمرم همه در کار دعا ره احرام چه بندیم چون قبل نه اینجاست در سعی چه کوشیم چون از مروه سفا ره دی گفت طبیب از سر حسرت چون مرا دید ها که رنج توز قانون شفا رفت ای دوست به پرسیدن حافظ قدم اینه زن پیش که گویند که از دار فنا رفت